پول و پیشه اگر برای امرار معاشکار می کنید احتمالا شغل خود را دوست دارید طبق یک نظرسنجی معتبر رضایت شغلی نه نتنها بالاست بلکه اخیران طبق آخرین آمار از 81 درصد در سال 2013 به 88 درصد در سال 2016 رسیده است چنین درصد بالایی بسیار قافل کننده است. به نظر می به این معناست که مردم به طور کلی باید رشد کنند اما این دور از واقعیت است. کمتر از یک ثوم از مردم خود را فردی کام یاب توصیف می کنند که منجر می شود دو ثوم آنها در تقلا باشند یا فقط از پس آن بر بیایند. چگونه ممکنه از چنین شکافی وجود داشته باشد؟ پاسخ سازگاری است. کارگران خود را با شغلی که انجام می سازگار می کنند از منظر پیرو سعادت خود باشید پیشه شما باید معرف شخصیت وجودی شما باشد با این حال در زندگی بیشتر مردم برعکس این امر صادق است اینکه آنها چه کسی هستند اهمیت چندانی ندارد آنچه مهم است نگه داشتن یک کار انجام آن به خوبی و امید به افسایش حقوق است برای تغییر این موضوع و ایجاد کاری که مناسب شما باشد باید با اصول اولیه شروع کنیم. اولا رضایت بخشترین شغل لزوماً لزومن پردرامدترین شغل ها نیستند. پزشکان در این کشور به طور متوسط دست مزد بالایی دارند و اگر برای جراح شدن آموزش ببینید، چشمنداز خوبی برای سروتمند شدن خواهید داشت. اما از میان پانزده شغل رضایت بخش پزشکان رتبه یازده را کسب می کنند و جراحان در رتبه چهارده در پایین ترین نقطه درست بالاتر از معلمان قرار دارند موقعیت شغلی شماره یک تقریبا همه را شکم می کند رضایت بخشترین شغل متعلق به روحانی هاست شغلی بسیار پردر آمد مدیر آمد یک شرکت بودن بسیار راضی کننده است شماره 2. اما اگر یک ارتوپید یا شماره سه یا یک آتش نشان شماره شش باشید می توانید تقریبا در محل کار خوشحال باشید پلیس در هیچ جاگ این لیست نیست آنچه در واقع اهمیت دارد شغل یا عنوان شغلی شما نیست که شرایطتی است که تحت آن کار می کنید که از طریق مطالعات روانشناسی اجتماعی اندازه گیری شده است. اگر می خواهید بدانید چرا شغل خود را دوست دارید یا از آن متنفرید، این عوامل را در نظر بگیرید. شرایط شغل رضایت بخش اگر محل کارتان امتیازات کلیدی خاصی را به شما بدهد، رضایت شغلی افزایش میابد. پول، نگرانی کم، امنیت شغلی، روابط خوب با همکاران، احساس شنیده شدن، وفاداری و حمایت از سطوح بالاتر، فرصت مراقبت از دیگران، مجالهایی برای پیشرفت، فرهنگ سازمانی مثبت، وظایف روزانه چالش برانگیز، و خوب بودن در شغل خود اگر شغل خود را با این لیست بسنجید هر چه تعداد کادرهای بیشتری را علامت بزنید در محل کار خوشحالتر خواهید بود این برایند تا آنجا که پیش می روید صحیح است اما فهرست ها و نمودار ها واقعا نشاندهندگه ماهیت انسان نیستند بیشتر مردم می توانند به هر طریقی در اطراف یک رئیس بدخالخ کار کنند. کارگران بیشماری کارهایی را انجام می دهند که آنقدر معمولی و بیمناس که مجاری برای چالشهای روزمره وجود ندارد. بنابراین با یافتن جایگزینی مثبت مانند ایجاد دوستی قوی در محل کار آنها را جبران می کنند. دو صندوقدار سوپرمارکت که تمام روز با هم گپ میزنند شادیه بیشتری دریافت می کنند تا دکتری که در زیر فشار تعداد بالای بیمار و کوهی از فرم هایی که باید پر کند به سطوح آمده است. همسو کردن خود با هوش خلاق به سودمندی در محل کار منتهي می شود. تمام هدف هوش خلاق این است که بهترین پیامد را برای شما و اطرافیانتان به ارمغان بیاورد. این تفکری جادوی نیست. در هر فردی سطحی از آگاهی وجود دارد که در پی راه حلی برای مشکلات است و وقتی از این سطح کنش می کنید با جریان هوش خلاق همسو می شوید. وقتی برعکس کنش می کنید و با نگرش اعتراض نگرانی و ملامت روی مشکلات تمرکز می کنید در سطح مشکل گیر می کنید. اکنون که اناسر مهمی را می که منجر به رضایت شغلی می شود، می توانید توجه خود را به بهبود آنها در شغل خود معطوف کنید. استفاده از انرژیهایتان در این راه بهتر از گلمندی، کینتوزی یا تحمل وضعیت موجود است. برداشتن گامهای فعال همیشه سازنده است. اگر در چنین محیطی قرار گرفتید، در اولین مجال، به سراغ شغل دیگری بروید پول شما باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید عرضشش را دارید. انجام این کار به جای جمع کردن پول بیشتر و بیشتر از نظر روانشناختی هدفی سالم است. دستمزد های ناعادلانه بیش از هر چیز دیگری باعث نارضایتی در کار می شود در فرهنگ سازمانی که دستمزد عادلانه ای پرداخت نمی کند احترام به کارگران نیست جایی ندارد پول مکار است و ممکن است دستمزد خوبی دریافت کنید ولی در کار خود پیشرفت نکنید. این معمولا به این دلید روی می دهد که فردی امیغن در بدهی است امدتا از طریق بدهی کارت اعتباری و مشکلات مالی آنقدر زیاده است که پول منبع نگرانی دائمی است. به وضعیت خود نگاه کنید و مسئولیت بخشی از نگرانی مالی را به عهده بگیرید که برای خود ایجاد کرده اید. بهترین راه برای پذیرفتن مسئولیت انجام آن در سطح آگاهی است. دیگر از پول درخواست نکنید کارهایی را که در توانش نیست انجام دهد پول بیشتر شغل بد را تحمل پذیر نمی کند پول بیشتر شما را از افرادی که درامد کمتری دارند بهتر نمی کند پول بیشتر به شما عزت نفس نمی دهد پول بیشتر باعث نمی شود که دیگران شما را بیشتر دوست داشته باشند. اگر چه ممکن است به خوبی وانمود کنند که شما را دوست دارند. تغییر این گرش ها، اگر آنها را در خود میبینید به این معنی است که با ارجهح قرار دادن خیش حقیقی بر درآمدتان هرچقدر هم که بالا باشد مسئولیت شخصی خود را بر عهده گرفته اید. نگرانی کم بیشتر نگرانی های شغلی از منابع کاملا شناخته شده ناشی می شود. فشاری ناشی از زربل اجل بار کاری بسیار سنگین، چند شغل بودن، سر و صدای زیاد و امنیت شغلی نداشتن. در عین حال نگرانی به جو وارد شده و هم مصری می شود. اگر به طور فعالانه می خواهید استراب را کاهش دهید، باید دو مرحله را انجام دهید. اوامل را که بر شما تاثیر می برطرف کنید و در محل کار باعث ایجاد استراب در دیگران نشوید. فضایی ایدئال، فضایی آرام و است که در آن همه بدون فشار بی مورد روی کاری در یک زمان متمرکز می شوند. آیا این تقاضای زیادی است؟ فقط شما می توانید داوری کنید زیرا هیچ دو محل کاری را نمیابید که دقیقاً شبیه هم باشند. یک دفتر حسابداری تقریباً ساکت شباهت کمی با یک کارگاه ساختمانی پر سر و صدا دارد. داور نهایی ذهن جسم است که سیستم جامعی دارد و جسم و ذهن را به عنوان یک واحد متحد می کند. اگر خواب کافی برایتان تان سخته است، نگران زربل اجل ها هستید. بعد از کار به نوشیدنی نیاز دارید. خشم خود را سرکوب می کنید. به راحتی عصبانی و آشفته می شوید. اشتهای خود را از دست می دهید یا به طور کلی احساس خستگی و لاغری می کنید. اینها ابتدایی ترین علائم هشدار دهنده ای هستند که نشان می دهد شما تحت نگرانی بیش از حد هستید و باید هر کاری که می توانید برای اصلاح این وضعیت انجام دهید در خصوص مسترب نکردن دیگران فرمول ساده است به چیزهایی فکر کنید که باعث می شوند احساس نگرانی کنید و وقتی از آنها آگاه شدید این کارها را با همکاران یا کسانی که زیر نظر شما کار می کنند انجام ندهید. کلمه کریدی فشار است. از احساس فشار بیش از حد آگاه باشید و کاری درباره آن انجام دهید، نه اینکه فشار را به ساگرین منتقل کنید امنیت شغلی، بعد از نگرانی درباره نداشتن پول کافی، بیشترین نگرانی مردم در خصوص امنیت شغلی است. حتی در ژاپن که زمانی به خاطر شرکت هایی که کارگران را مادام العمر استخدام می این نگرانی شناخته شده بود. رویه یک معمول شرکت در همه جا بدتر شده است. صندوق های بازنشستگی خالی شده و حقوق کارگران کاهش یافته است. مردم به دلیل ترس از نداشتن شغل و امنیت شغلی به شرایط موجود رضایت دادند در جایگاه مردم من و شما هیچ قدرتی بر روی شیوه های تجاری نداریم اما در درکود اقتصادی بزرگ گذشته، رکود بزرگ سال 2008 و بیکاری های گسترده ناشی از همه گیری کووید 19 مشخص شد که این کسب و کارهای کوچک بودند که به رفاه کارگران خود اهمیت میدادند و مسئولیت را تقسیم و سعی میکرد راه های عادلان ای برای ادامه کار کارکنان خود بیابند. نقش شما ارزیابی شرکتی است که برای آن کار می کنید. همچنین باید وضعیت فعلی خود را با وضوح و استدلال درست ارسیابی کنید. مثلا به کارکنان با چه روشهایی توجه می شود؟ آیا واقعاً رفاه نیروی کار برای مدیریت اهمیت دارد؟ آیا همکاران شما احساس امنیت می کنند؟ بررسی کنید و به جواب برسید سپس در نظر بگیرید که چقدر برای امنیت شغلی خود ارزش قائل هستید در برخی مشاغل مانند رستورانها سیال بودن شغل طبیعی است؟ در حالی که در برخی دیگر مانند بخش‌های خدمات اجتماعی دانستن اینکه احتمالاً همیشه شغل خواهید داشت جاذبه اصلی است در خصوص وضعیت فعلی خود واقعبین باشید اما به آینده نیست، توجه کنید آمریکا کشوری است با شبکه های ایمنی اجتماعی کم بدهی مصرف کننده بالا، نرخ بالای مصرف غذا نرخ پایین پسنداز و حمایت کمی که توسط نیروی کار سازمان یافته ارائه می شود. همراه با این واقعیت که کووید 19 جان افراد بسیاری را گرفت در این میان افراد بسیاری هم زندگی طولانی داشتند. بنابراین این گرایانه است اگر فرض کنیم که باید سالها پیش از بازنشستگی خود را از نظر مالی تمین کنید. بین ده تا سی سال پیشتر اگر در شست و پنج سالگی بازنشسته شوید. وقتی میزان پسندازی را که کارشناسان مالی از جمله محاسبات دولتی بر اساس گروه سنی توصیه می کنند در نظر می تصویر کاملا نگران کننده است. امریکایی های 30 ساله یک تا دو برابر حقوق سالانه توصیه می شود. در مقابل میانگین پسنداز واقعی 21 هزار تا 48 هزار دولار. امریکایی های 40 ساله 3 تا 4 برابر حقوق سالانه توصیه می شود. در مقابل میانگین پسنداز واقعی 63 هزار تا 148 هزار دولار. آمریکایی های 5 ساله، 6 تا 7 برابر حقوق سالانه توصیه می شود. در مقابل میگیین پسانداز واقعی۱ هزار دلار تا 2۲ هزار دلار. آمریکایی های 6 ساله، 8 تا 10 برابر حقوق سالانه توصیه می شود. در مقابل، میانگین پسنداز واقعی 172 هزار تا 206 هزار دولار. به عنوان یک قاعده کلی، طبق توصیه های مالی استاندارد باید 10 تا 15 درصد از درآمد سالانه خود را که از دهه 20 سالگی شروع می شود پس انداز کنید و مشتاقانه منتظر زندگی پس از بازنشستگی با 80 درصد درامد سالانه خود باشید. مهم نیست کجا تن از ظلم می کنید، بسیاری از مردم بهتر عمل می کنند و بسیاری بدتر از حد متوسط. مسئولیت مادامل عمر شما این است که خود را در آینده ایمن کنید. نظرسنجی ها دریافتند که بزرگترین ترس در میان سالمندان بیماری یا مرک نیست بلکه سربار فرزندان شدن است. این ترس بیش از پیش برای میلیون ها امریکایی به دلیل پسنداز کم، برنامه های بازشستگی ناکافی، حزینه های بالای زندگی و حزینه های گذاف مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر حتی افراد موسن سالم به واقعیت تبدیل می شود. برای اینکه بخشی از آمار منفی نباشید، پاسخ برای هر جنبه ای از پول یکسان است، شما فقط می توانید آنچه را که از آن آگاه هستید تغییر دهید. بدون آگاهی تومه شرایط خارج از کنترل خود هستید. روابط خوب با همکاران این نکته ممکن است بدیهی به نظر برسد زیرا کنار آمدن با همکارانتان مصلوب تر از عکس آن است. با این حال در واقعیت اشکالاتی وجود دارد. کنار آمدن با برخی افراد در محل کار به دلیل شخصیت دشوارشان غیر ممکن است. برخی افراد خودخواه هستند و به هیچ کس توجهی ندارند یا ممکن است آنقدر رقابت کنند که نتوان به آنها اعتماد کرد. شایعات اداری مانند عاشقانه های اداری روابط را خراب می کند. به طور خلاصه، محل کار به اندازه خود طبیعت انسان پیچیده است. نقش شما این نیست که یکی از انواع شخصیت های منفی محیط کار که ذکر شد باشید. همکاری دوستانه باید میار شما باشد. همچنین با انجام این گذینه ها روابط خود را با همکاران بهبود بخشید. گوش دادن هنگام صحبت دیگری علاقه نشان ندادن یا طرفداری کردن قدردانی با استفاده از کلمات مناسب برای کار خوب همکار کمک کردن به همکار مسترب یا در تنگنا قرار گرفته محترمان برخورد کردن پرهیز از شایعات و سیاست اداری همدردی با روایت همکاران از روی دادها حتی در صورت مخالفت با آن و درک داستان هر فرد و باور کردن داستان آنها. ممکن است این فهرست تورانی به نظر برسد اما در پایان هر گذینهی در عوض ناآگاهی ناشی از آگاهی است. هنگامی که از نحوه کار روانشناسی گروهی یعنی گروهی که خود را در آن میابید آگاه شدید می توانید همانطور که آگاهی حکم می کند رفتار کنید. تعداد کمی از افراد در روانشناسی خود به اندازه کافی انعتاف پذیر هستند تا در هنگام بروز مشکلات روابط خود را تغییر دهند. بنابراین بهترین توصیه این است که مشکلات را پیش بینی کنید به از قبل از آنها اجتناب کنید حس اینکه نظرات شما شنیده می شود برخلاف نظر بسیاری از ما متادعات مربوط به رضایت شغلی حس شنیده شدن را بالاتر از سایر ویژگی های محیط کار قرار می دهد زیرا همیشه نامتعادلی در دستور کار ایگا وجود دارد آنچه من باید بگویم مهمتر از آنچه دیگران می است. حتی زمانی که این عامل قالب نباشد به راحتی می توان فراموش کرد که هر فردی که با او روبرو می شوید حداقل به همان اندازه که شما می شنیده شود. اگر متوجه شدید که در محیطی کار می کنید که در آن افراد بالاتر به شما گوش نمی این یک علامت حشداردهندگی بزرگ است که نشان می در شغل اشتباهی هستید. هنگامی که مدیران از گوش دادن امتنام می کنند، صحب شما اساساً سخن بی حاصل گفتن است و می توانید انتظار داشته باشید که احساس یه رنجش، و درماندگی شما افزایش یابد. وفاداری و حمایت از سطوح بالاتر در هر نوع کاری به استثناگ مواقعی اندک سلسل مراتب وجود دارد. فردی بالاتر از شما وجود خواهد داشت که استقلال و آزادی شما را محدود می کند، فقط به این دلیل که همه چیز به این شکل تنظیم شده است برای احساس راحتی در هر نقطه از یک سلسل مراتب باید به افراد بالا دست خود اعتماد کنید در این معامله به آنها قدرت می دهید تا به شما مسلط باشند بسیاری از مردم منفعلان شرایطی را می که در آن مبادله کاملا از تعادل خارج شده است از آنها انتظار می روید که وفادار باشند، در حالی که افرادی که بالاتر از آنها هستند، اعتماد نپذیر، دمدمی، خودسر، بسته یا به شکلی غیرمنصفانه از قدرت استفاده می کنند. اگر کسی را در محل کارتان زیر دست دارید، وظیفه شما اجتناب از آن دام هاست، با نگریستن به کسانی که بالا دست شما هستند معامله نانوشته ای را که بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد جدی بگیرید اگر معامله بدی است در نظر بگیرید که آیا در شغل مناسبی هستید یا خیر تذکر دادن درباره باره بی به یک رئیس یا مدیر بعد به ندرت وضعیت را بهبود می و اغلب منجر به تلافی می شود فرصت مراقبت از دیگران روحانیون، پرستاران و فیزیوتراپیست ها به دلیل ویژگی مشترک رضایت شغلی بالایی دارند. آنها مجال مراقبت از دیگران را دارند. چنین مراقبتی مبتنی بر همدری و میل به کمک هست. وضعیت محکوس در میان مراقبان بیماران آلزایمر وجود دارد، جایی که بار مسئولیت ثابت است، پایان ناامید کننده است و پاسخ شخصی که از او مراقبت می شود ناچیز یا بدتر است. این چالش در خور توجه برای جامعه ماست ما که مراقبت از بیماران مبتلا به زباد عقل امید به زندگی مراقب را به طور متوسط بین 5 تا 8 سال کاهش می دهد که نتیجه مستقیم استراب روزانه بیش از حد است. اکثریت غریب به اتفاق مشاغل در حرفه مراقبت نیستند اما شما می توانید همدردی و مراقبت در هر زمینه کاری را ابراز کنید. از این مجار استفاده کنید و به دیگران نشان دهید که برای آنها اهمیت قائل هستید حتی اگر فقط با لبخندی گرم یا اظهار نظری گذرا باشد از یک فرمول یا آئین پیروی نکنید، صمیمی و برییا باشید زندگی مدرن امکان احساس انزوا و تنهایی را به ویژه در میان فوقرا و سالمندان افزایش میده این واقعیت را در نظر داشته باشید زیرا رفاه به میزان حمایت دوستان، خانواده، همکاران و گروه های حمایتی بستگی دارد. اگر حمایت کنید، به احتمال زیاد در آینده زمانی که خود را نیازمندیدید، آن را دریافت خواهید کرد. مجادهایی برای پیشرفت، سالها پیش با یک سرمایهگذار رسانه ای آشنا شدم که به طرز غیرعادی، حسادت، خشومت، ترس و کینه بسیار کمی در شافش وجود داشت. اگر یک ثروتمند وجود داشت که کارمندانش دوستش داشتند این مرد بود. راز او ساده بود. وی به این هدف میندیشید که هر شریکی را به اندازه خودش ثروتمند کند. از نظر او این راز موفقیتش بود زیرا وقتی کارکنانش دریافتند که وی مشتاق و ماگل است هر فرصتی را برای پیشرفت در اختیار آنها بگذارد به او وفادار شدند تصور میکنم امروزه چنین رفتاری نادر است برخی از شرکت بزرگ به ویژه در سیلیکون ولی، فرهنگ سازمانی ایجاد کرده اند که برای کارکنان انواع امکانات رفاهی در محیط کار فراهم شود، در سطح فردی تمایل به قرار دادن خود در اولویت اول مطابقه دستور کار ایگاست اما اگر همه میخواهند پیشرفت کنند عمل کردن به عنوان نهادهای خودخوااهد جداگانه، یکی از بدترین راه برای افزایش شانس واقعی برای پیشرفت است. نقش شما این است که شغلی پیدا کنید که در آن مجاری برای پیشرفت وجود داشته باشد که البته هنوز برای زنان آسان نیست این بخش می تواند چالش برانگیز باشد و به همین دلیل است که افراد زیادی در بازار کار آمریکا وجود دارند که بین شغل قبلی و شغل بعدی قرار گرفتند با این حال روند به نفع شما حرکت نمی کند روند رو به رشد افزایش فرصتهای شغلی در ایالات متحده کاهش یافته است و کشورهای دیگر مانند کشورهای اسکاندیناوی اکنون فرصتهای بیشتری را ارائه می دهند. فرصتهای شغلی موجود هم به سوی مردان سفید پوست تحصیل کرده متماگل شده است. اگر مدرک دانشگاهی ندارید چندین دهه هست که فرصتهای شما رو به کاهش بوده است. یک مرد سیاه پوست با تحصیلات مشابه یک مرد سفید پوست احتمالاً تنها پنجاه درصد پیشرفت در کار خواهد داشت. با نگاهی واقع بینانه به این مجالها بسیاری از مردم خود را بماندن در یک شغل نسبتاً ثابت راضی کردن که احتمالاً مجالهای کمی برای پیشرفت ارائه می دهد. شما باید تصمیم بگیرید که وضعیتتان چگونه است و چه انتظاراتی دارید. سرمایه گذار حاضه رسانه ای را هم که نام بردم در نظر داشته باشید ایجاد مجال برای دیگران یک استراتژی برنده است یکی برای همه و همه برای یکی راهی مناسب برای پیشرفت به شمار میآید افرادی را که به عنوان متحد میشناسید بیابید و اتحادها، ارتباطات و شبکه ها را به عنوان بخشی منظم از مسیر شغلی خود ایجاد کنید. فرهنگ سازمانی مثبت فرهنگ سازمانی از نقطه شروع بسیار پایین و حتی شرمور، سوی بهبود حرکت می کند سرمایه داران امریکایی از سنت بیرحمانه استثمار کارگران سربراورده هند زمانی که هنری فورد مدل خود را از یک کارخانه خط منتاج خود را در ریور روژ در خارج از دیترویت در سال 1928 ساخت محیط کاری را ایجاد کرد که به طرز غیر انسانی سر و صدا، تنشزا به شکل نسنجیده خسته کننده و با دست کم بود. با این حال، در خصوص موفقیت خدرهای مدل تی و مدل ای فورد بسیار بیشتر از فرهنگ سازمانی وحشتناک کارخانه فورد می خانیم. که مزایا دارند امروز بسیار پرمخاطب هستند و 99 درصد از کارگران تنها می توانند با قبط خوردن به یک درصدی بنگرند که برای شرکت مانند گوگل و اپل کار می کنند، و شرایط کاری انسانی و راحت را ارائه می دهند اما حتی این شرکت ها هم با کارخانه های چینی در امریکا کار می کنند که از کارگران بیگاری میکشند و غیر قانونی هستند افراد نمی توانند بر فرهنگ سازمان تاثیر بگذارند مگر اینکه در سلسل مراتب در سطح بالایی قرار گیرند نقش شما این است که رفاه خود را مقدم بر پول قرار دهید. جایی کار کنید که از نظر روحی و جسمی احساس خوبی دارید. حد شما شایسته این صد از شرایط کاری هستید. اگر مشکلی وجود دارد، کار در خانه یا تغییر شغل را در نظر بگیرید. رضایت دادن به فرهنگ سازمانی نادرست، ناشی از ترس و ناامنی است. در عوض با سطح رفاه خود انگیزه ایجاد کنید این تمام چیزی است که این کتاب به آن میپردازد